دوستای گلم به کلاس دیگه ای از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. اگه این اولین باریه که در کلاسای ما شرکت می کنین، مقدم شما رو به این دوره خوشامد آمد می گیم. در طی این دوره کل کتاب کتاب مقدس رو یکی یکی به شما معرفی می کنیم. اگر چه داریم به پایان این دوره از بررسی نزدیک می با این حال دوست داریم که به ما ملحق بشید و در مورد مهمترین کتاب دنیا بیشتر یاد بگیرید. میخوام با یه سوال شروع کنم. اگر شما بخواید وسیله رو تعمیر کنید، از هر کسی که سر راتون قرار گرفت میخواید اون رو تعمیر کنه یا از سازندش؟ خب، در درس امروز، معلم ما به ما یادآوری میکنه که ازدواج ایده خدا بود و او تنها کسیه که واقعا میتونه اون رو اصلاح کنه و حفظ کنه. بیاید با دقت به الگوی ازدواجی که خدا به ما میده گوش کنیم ضمن بررسی هامون به رساله اول پتروس رسیدیم وقتی که رسالات پتروس رو بررسی میکنیم پیشنهاد میکنم که همیشه یادتون باشه شما دارید به مشاوره ها و الهیات یک شبان کارکشته گوش میکنید پتروس الهیات مراقبت های شبانی خودش رو با تمام قلبش به ما میده ما باید انتظار داشته باشیم که الهیات رابطه ای رو بشنویم. پتروس به چیزهای عملی علاقمند بود. پتروس الهیدان رومی یا ابرانی نبود. او یک شبان بود. او مشاوره های عملی رابطه ای و سمیمانه یک شبان مجرب رو با ما درمیون میذاره. در سومین باب از اول پتروس میبینیم که پتروس رسول مشاوره های ازدواج الهامی رو به ایمانداران یهودی مسیحی شده در سراسر آسیای سغیر میده بهترین مشاوره ازدواجی که میتونید با اون روبرو بشید در کتاب مقدس وجود داره به همین طریق شما ای زنان مطیع شوهران خود باشید اینجا عمیق ترین مثال ها از چیزی هست که در موردش صحبت کردیم به همین ترتیب شما ای زنان مطیع شوهران خود باشید تا چنانچه بعضی از آنها به کلام خدا ایمان ندارن به وسیله رفتار شما ایمان آورند بدون آنکه با آنها چیزی بگویید زیرا آنها رفتار نیک و خدا ترسی شما را خواهند دید زیبایی شما نباید در آرایش ظاهری باشد که به آرایش مو و پوشیدن جواهرات و لباس زیبا بستگی دارد بلکه زیبایی شما باید از باطن باشد درون خود را با گوهر فناناپذیر یک روح آرام و ملایم بیارایید زیرا این نوع زیبایی در نظر خدا ارزش بسیار دارد و به این طریق بود که زنان مقدسی که در قدیم به خدا توکل داشتند خود را زیبا می ساختند آنها مطیع شوهران خود بودند مثل سارا که از ابراهیم اطاعت کرد و او را ارباب خطاب می نمود پس اگر شما هم نیکوکاری کنید و از چیزی نترسید دختران او خواهید بود وقتی باب سوم اول پتروس رو بررسی می کنیم با مشاوره های ازدواج فوق العاده ای برخورد میکنیم بهترین مشاوره های ازدواج در کتاب مقدس وجود داره چون که ازدواج چیزی هست که خدا اون رو طراحی کرده اگر ازدواج شما ازدواجی طبق نظر خدا باشه اون موقع میتونید بگید خدا اون رو عملی کرده نویسندگان کتاب مقدس به ما میگن که فقط خدا میتونه اون رو حفظ کنه وقتی یک ازدواج ازدواجی طبق نظر خدا باشه خدا منشاء اون ازدواج هست. خدا نیروی پشت اون ازدواج هست و هدف از اون ازدواج جلال خدا هست. از اون جایی که خدا بنیانگذار ازدواج هست، ما میتونیم توقع داشته باشیم که احکام ازدواج در کتاب مقدس وجود داشته باشه. اگر فکر میکنید چیزی رو که خدا در زمان طرح ازدواج در دلش داشت تجربه نمیکنید، میتونید مجموعه ای از مشاوره های نویسندگان کتاب مقدس رو پیدا کنید که کتاب راهنمای خدا برای ازدواجتون باشه. وقتی شما مشاوره‌های پتروس رو برای ازدواج در هفت آیه اول باب سه اولی نامه اش میخونید، ملاحظه میکنید که او شش آیه رو خطاب به زنان نوشته و یک آیه رو خطاب به مردان. شاید فکر کنید که در مشاوره‌های ازدواج پتروس کمی جانبداری وجود داره، همونطور که در نوشته های پولس هم میبینیم. اگرچه ممکنه فقط یک آیه برای مردان و شش آیه برای زنان وجود داره، به نظر من برای مردان معموریت چالش برنگیستری داده شده. اساس مشاوره های ازدواج پتروس و مشاوره های ازدواج پولس این هست که به مردان و زنان میگند که به الگوی الهامی ازدواج نگاه کنند که همان الگوی مسیح و کلیسا هست. پتروس به اون الگوی الهامی ازدواج در پایان باب دوم اولین رسالهش اشاره میکنه. پتروس مشاوره ازدواج الهامی خودش رو به اولین نسل از کلیسا ها میده و به طور کاربردی و وسیعی در سرتاسر بیست سر قرن به همه کلیساها از جمله به کلیساهای ما در قرن 21 هم میده. هم پولس و هم پتروس می ای زنان آیا الگوی کلیسا و مسیح رو میبینید؟ بسیار خوب. در اون مدل شما کلیسا هستید و باز دوباره هم پتروس و هم پولس می ای مردان آیا اون الگوی مسیح و کلیسا رو میبینید اون الگویی برای ازدواج هست و در اون الگو شما مسیح هستید هم پتروس و هم پولس میگویند ای زنان آنچنان که کلیسا برای مسیح بود شما هم برای شوهرانتون باشید بعد به مردان میگویند شما هم برای زنتون همون طور باشید که مسیح برای کلیسا بود حالا از شما میپرسم ماموریت چه کسی چالش برانگیزتر هست؟ یک اصل مشاوره‌ی ازدواج جالب در این متن هست که من همیشه بابت اون از پتروس سپاسگزار هستم. این اصل مشاوره ازدواج نشون میده که ما این مشاوره ها را از شبانی میشنویم که گنجینه ای از تجربیات داشت. وقتی پتروس زنها رو مخاطب قرار میده، او با زنها در مورد زنها صحبت میکنه و وقتی مردان رو مخاطب قرار میده با مردان در مورد مردان صحبت میکنه. به عنوان یک شبان تجربیات من اینه که وقتی مردی در مورد ازدواجش صحبت میکنه، قصد داره که در مورد زنش صحبت کنه البته زنان هم واقعا همین طور هستن وقتی زنی میخواد در مورد ازدواجش صحبت کنه قستش که در مورد شوهرش صحبت کنه روزی در مقابل تخت داوری شما پاسخگوی شخص خودتون خواهید بود خدا شما رو مسئول خودتون میدونه اگر شما زن هستید خدا از شما به عنوان یک زن در رابطه یک ازدواج حساب خواهد گرفت اگر مرد هستید در مقابل خدا به عنوان مرد پاسخگوی روابط ازدواجتون خواهید بود حالا که روش داوری خدا اینگونه هست پس وقتی خدا مشاوره های ازدواج رو میده خواه توسط پولس یا پتروس یا هرکس دیگری تنها روش واقع گرایانه این هست که ما در مورد روابط ازدواجی صحبت خواهیم کرد که شما در اون زندگی می کنید شما زنان گوش کنید من با شما در مورد زنان صحبت خواهم کرد و شما مردان به من گوش کنید با شما در مورد مردان صحبت خواهم کرد حالا این واقع گرایانه است چون زن میتونه کاری در مورد زن بکنه و مرد میتونه کاری در مورد مرد بکنه می خوام بزرگترین مشکل ازدواج مسیحی رو به شما یادآوری کنم در مشاوره ازدواج پتروس و پولس به زنان گفته شده که تسلیم شوهران خود باشند همونطور که کلیسا تسلیم مسیح بود البته تسلیم شدن کار آسانی نیست اما واقعاً این مشکل اصلی در ازدواج مسیحی نیست مشکل اصلی در ازدواج مسیحی مرد هست که نمیخواد مسئولیت خودش رو برای شبانی همسر و فرزندانش به عهده بگیره بگونه ای که مسیح کلیس رو شبانی میکرد مشکل اصلی در ازدواج مسیحی مرد هست که فیض خدا رو دریافت نکرده تا اینکه مسئولیت خدادادی خودش رو برای محبت و وقت به خودش به زن و فرزندانش انجام بده همونطور که مسیح خودش رو برای کلی داد و کلیسا رو محبت کرد. پتروس از آیات یک تا شش باب سه نامه اول پتروس زنانی رو مخاطب قرار میده که شوهرانشان از کلام خدا اطاعت نمی کنن. این میتونه به این معنی باشه که او با مردی غیر ایماندار ازدواج کرده که از کلام خدا اطاعت نمی کنه یا میتونه ایمانداری باشه که از کلام خدا اطاعت نمی کنه. زنی که پتروس در این متن به او اشاره کرده مشکل اصلی رو در ازدواج مسیحی تجربه میکنه. اما ملاحظه می کنید که بعد از اینکه پتروس به وضوح به زنی اشاره میکنه که شوهرش مشکل داره بعد از اون حتی کلمه ای هم در مورد شوهرش به اون زن نمیگه. پتروس میگه ای زنان. اگر شوهری دارید که از کلام خدا اطاعت نمیکنه شما باید روحانی باشید. چون تا زمانی که شما روحانی نشید اون چیزی رو که میگم باید باشید نخواهید شد. بعد او میگه شما تسلیم باشید و با روی خوش تسلیم باشید. این امکان هست که شما تسلیم باشید اما با روی گشاده تسلیم نشید. وقتی دختر بزرگ من بچه کوچکی بود، او با من توی اتومبیل نشسته بود. او روی صندلی جلو ایستاده بود و من به او گفتم که بشینه. اما او نمی نشست و من پای او رو گرفتم و او را به زور او روی صندلی نشسته بود و اخم کرده بود و بعد از چند دقیقه من پرسیدم چرا اخم کردی؟ او گفت من ظاهرا نشستم اما توی دلم سرپا ایستادم حالا برای یک زن این امکان هست که اونطوری تسلیم بشه او ممکنه ظاهرا بشینه اما در درونش سرپا بیسته پتروس میگه فقط تسلیم نشید با خوشرویی تسلیم بشید این دعوت به خوشرویی زنان یکی از ارزشمندترین مطالب پتروس هست. همونطور که در مقدمه نامه اول پتروس بهتون گفتم چیزهای ارزشمند زیادی در مورد پتروس هست. پتروس میگه زن نرمخو با روحی ملایم در نظر خدا ارزشمند هست. بعد همینطور به همین زن میگه ساکت باش. ملاحظه میکنید که پتروس دو بار در این شش آیه به زنان میگه که ساکت باشن. پتروس به زنان میگه که بدون اینکه کلمه ای حرف بزنن شوهرانشون رو به دست بیارن. شوهر او از کلام اطاعت نمیکنه یعنی اینکه در جای خودش نمیسته مشکل بزرگ اینه که چی کار باید بکنید که او در جای خودش بیسته؟ پتروس میگه بدون هیچ حرفی. منظور او اینه که وقتی او نشسته و برنامه مورد علاقش را از تلویزیون میبینه بین او و تلویزیون نیستید و برای او از کلام معزه نکنید. این هرگز مرد رو به جایگاه هستی خودش بر نمیگردونه. پتروس میگه بدون هیچ حرفی و میگه با روحی ملایم و نرم با او برخورد کنید که در نظر خدا ارزشمند هست. در اصل پتروس به زنان میگه که برای به دست آوردن شوهری که از کلام تاعت نمیکنه، اونها باید روحانی باشند تسلیم باشن، نرم خو و ساکت باشن. پتروس اصل بسیار مهم میره به عنوان مشاوره به زنی میده که شوهرش از کلام تاعت نمیکنه. کنه. پتروس به این زن میگه اگر شوهر تو در جای خودش نمیسته تو کار زیادی نمیتونی برای همسرت بکنی اما میتونی با فیض خدا در جای خودت بیستی و از خدا بخوای که تمام فیضی رو که میتونه به تو بده تا اینکه تو بتونی در جای خودت بیستی و زنی باشی که خدا میخواد باشی تو زن کاملی باش که خدا میتونه تو رو کامل کنه بعد اگر چیزی هست که بتونه شوهر تو رو به جایگاه خودش بکشونه این هست که او ببینه تو در جای خودت ایستادی. سادی پتروس به این زن تضمینی نمیده پتروس به این زن نمیگه که مشورت او همیشه مؤثر واقع خواهد شد پتروس به او میگه اگر چیزی باشه که بر او تاثیر بذاره همین مشورت خواهد بود پتروس به این زن میگه که این مشاوره بهتر از مشاوره‌های دنیا کار خواهد کرد وقتی به الگویی که پتروس برای ازدواج به ما ارائه میکنه از نزدیک نگاه میکنید بر کلمه تسلیم متمرکز بشی در پایان باب دوی رساله اول پتروس او به عیسی مسیح اشاره میکنه. او عیسی مسیح و مرگ او رو بر صلیب با خادم رنج کشیده در اشعای یکی می میدونه. اون باب مهم اشعیا سه رو به خاطر میارید که میگه همه ی ما مثل گوسفندان گم شده بودیم و هر یک از ما به راه خود میرفت. خداوند گناه ما را به حساب او آورد و او به جای ما متحمل آن مجازات شد. تمامی مجازاتی که ما شایستش بودیم بر او تحمیل شد. بنابراین از زخمهای او ما شفا یافتیم. همه این متن در مورد عیسی هست. ما میدونیم همه این درباره عیسی هست چون در باب هشت کتاب اعمال فیلیپس مبشر به خاجه هبشی گفت که این باب مهم در اشعیا همش در مورد عیسی هست. و اینجا پتروس عیسی را با اون خادم رنج کشیده در اشعیا مطابقت داده. اما بعد از انجام این کار به روشی زیبا و گفتن به ما با زبانی شیوا که عیسی بر روی صلیب به خاطر گناهان ما مرد، پتروس میگه مسیح شخصا بار گناهان ما را بر دوش گرفته و آنها را بر صلیب برد تا ما هم نسبت به گناه بمیریم و برای نیکی مطلق زیست کنیم. زیرا به سبب زخمهای اوست که شما شفا یافته اید. شما مثل گوسفندانی بودید که راه خود را گم کردند، اما اکنون پیش شبان و نگهبان جانهای خود برگشته اید. کلمه بعدی که پتروس میگه این هست. همچنین شما ای زنان. وقتی که به کلمه همچنین در ابتدای باب سه برمیخورید میخورید، باید سؤالی بپرسید. مانند چی؟ پتروس به شما میگه که مانند چی. او میگه اما اکنون پیش شبان و نگهبان جانهای خود برگشته اید. اینجا تصویری از کلیسا هست که به سوی ایسای مسیح برمیگرده شبان و نگهبان کلیسا پتروس عیسای مسیح رو به عنوان شبان اعظم و نگهبان کلیسا به تصویر میکشه بعد از این که میگه شبان اعظم کلیسا پتروس بعد میگه شما ای زنان آیا الگوی مسیح بر کلیسا رو دیدید بسیار خوب شما کلیسا هستید همونطور که کلیسا تسلیم مسیح هست تسلیم شبان و نگهبان کلیسا شما زنان نیز باید تسلیم شوهرانتون باشید این کلمه تسلیم که پتروس در این متن به کار برده عملا به این معنی هست که پتروس میگه اجازه بدید همسر شما شما رو شبانی بکنه خدا به شوهر شما مسئولیت بزرگی داده و همسر شما فرمان داده شده که شما رو شبانی بکنه به نحوی که مسیح کلیسا رو شبانی میکنه این بدان معنی هست که همسر شما شما را مانند مسیح محبت میکند. او خودش شما مانند مسیح به شما میده او باید برای شما مثل مسیح باشه و این مسئولیت بسیار بزرگی هست پس حالا بذارید همسرتون شما رو شبانی کنه در یک کشتی هر نوع کشتی که باشه یک افسر فرمانده وجود داره یک کشتی نمیتونه دو افسر فرمانده داشته باشه این فرمانده میتونه بعضی از اختیاراتش رو در عرصه های مختلف به دیگران واگذار کنه اما نمیتونه مسئولیت خودش رو در مورد هیچ چیزی در اون کشتی به دیگران واگذار کنه اگر مشکلی در اون کشتی به وجود بیاد افسر فرمانده تنها کسی هست که باید در مقابل مافوقش پاسخگو باشه چون که او هرگز نمیتونه مسئولیت خودش رو به کس دیگری واگذار کنه و این مسئولیت همیشه بر عهده او خواهد بود در این متن از کتاب مقدس در باب پنجم افسوسیان و دیگر متنها در کتاب مقدس خدا مسئولیت ازدواج و خانه رو به شوهر موکول میکنه اونجا که میگه زن خودت رو آنگونه شبانی کن که مسیح کلیسا رو شبانی میکنه. در این حال خدا به زن میگه بزار شوهرت مسئول تو باشه. مسئولیت به این دلیل هست که شما نمیتونید دو افسر فرمانده در خانه داشته باشید. یک نفر باید مسئولیت رو به عهده بگیره و خدا این مسئولیت رو به مرد محول کرده. آیا شما راهنمایی برای ازدواجتون رو از فرهنگ خواهید گرفت یا از کتاب مقدس؟ اگر راهنمایی برای ازدواجتون را از فرهنگ بگیرید چیکار خواهید کرد؟ اگر ازدواج شما خوب پیش نمیره، آیا میتونم این سوال رو از شما بپرسم؟ آیا این امکان وجود داره که الگوی کتاب مقدس برای ازدواج بهتر از الگوی فرهنگی باشه که در حال حاضر در زندگی شما موثر واقع نمیشه وقتی پطرس در آیه هفت باب سه اول پطرس به موضوع شوهران میرسه ملاحظه کنید اولین کلمه چیه؟ او میگه؟ و شما ای شوهران باید رفتارتان با همسرتان همیشه با ملاحظه باشد و چون آنها جنس لطیف هستند و در فیض حیات با شما صحیم و شریک می باشند با عزت و احترام با آنها رفتار کنید مبادا دعاهای شما مستجاب نشود اولین کلمه ای که پتروس مشورتش رو برای مردان شروع میکنه کنه همون کلمه ای هست که برای زنان شروع کرده وقتی شما کلمه نیز یا همچنین رو میشنوید باز هم باید از خودتون بپرسید پتروس مانند چی؟ و پتروس جواب میده: "به عقب برگردید و به الگوی الهامی ازدواج نگاه کنید. آیا شما مسیح و کلیسا رو در آخرین آیه باب دیدید؟ بسیار خوب. شما شوهران در اون الگو مسیح هستید. حالا شما با زنتون بمونید همونطور که اگر مسیح بودید میموندید. شما اونها رو همونطور که مسیح کلیسا رو محبت میکنه محبت کنید. خودتون رو به همسرانتون بدید. همونطور که مسیح خودش رو به کلیسا داد و شما برای زنانتون همونطور باشید که مسیح برای کلیسا بود. اون کلمه همچنین کلمه بزرگی در آیه هفت اول پتروس باب 3 هست و شما نیز شوهران باید رفتارتان با همسرتان همیشه با ملاحظه باشد. من خوشحالم که پتروس نگفته با اونها بر اساس درک خود رفتار کنید. چند سالی از ازدواج ما گذشته بود که من به این نتیجه رسیدم که هرگز زنم رو درک نخواهم کرد. البته مطمئنم که او هم پس از چند سال میگفت که نمیتونه منو درک کنه. پتروس به شوهران نمیگه که زنان خودشون رو درک کنن. شاید به این دلیل باشه که ما مردان زنان متعهل حتی خودمون رو هم درک نمیکنیم. پتروس به مردان میگه با اونها با ملاحظه رفتار کنی. شما شاید همسرتون رو درک نکنید، اما میتونی رو بشناسی. من وقتی به مردان مشورت میدم از اونها میپرسم که اگر روزی همسر اونها حافظشون را رو از دست بده و یا بیمار روانی بشه آیا اونها میتونن شرح حال گذشته همسرشون رو برای پزشک او بنویسند یا نه آیا شوهرانی هستند که بتونن اون صفحات رو پر کنن من همیشه شوهران رو با این پرسش به چالش میکشم که آیا شما قادر هستید این کار رو بکنید یا نه مطمئنم که مردان زیادی هستند که نمیتونن سوابق اجتماعی همسرشون رو بنویسند. اونها همسرشون رو به خوبی نمیشناسن آیا اگر زن شما نیمه شب تصادف بکنه آیا قادر هستید حتی سابقه پزشکی او رو ارائه بکنی آیا شما خصوصیات جزئی او رو میدونی هر زنی خصوصیات منحصر به فردی داره مخصوصا زمانی که حامله است شاید اونها قابل درک نباشند. اگر اونها نیمه شب قزاهای عجیب و غریبی بخوان و یا ساعت سه صبح بستنی با اسانس عجیب و غریبی بخانند شما مجبور نیستید این رو درک بکنید کافیه فقط بدونید که اونها اینو میخوان خواسته های همسرتون رو بدونید ترس ها و نگرانی های او رو بشناسید لازم نیست دلیلش رو بدونید فقط بدونید او از چی ناراحت میشه همسرتون رو شبانی کنید با اونها با ملاحظه رفتار کنید شاید به نظر بیاد پتروس داره چیزی بدیهی رو اظهار میکنه وقتی میگه با همسرانتون بمونید اما واقعا امروز لازمه که این گفته بشه این روزها الگویی در حال گسترش است که چند سال پس از ازدواج مرد دنبال ورزش‌ها و تفریحات خودش مثل ماهیگیری، شکار و تفریحات مورد علاقهش میره و هرگز فرصتی برای صرف کردن وقت با خانواده‌اش نداره. خیلی از مردان هستند که وقت زیادی رو در خانه نمیگذرونن. یه بار از مردی پرسیدم چرا اکثر وقتاشو بیرون از خونه میگذرونه؟ من ملاحظه کردم که وقتی این زن و شوهر به کلاس‌های کتاب مقدس میان، هر کدوم از اونها به کلاس جداگانه‌ای میرن. به او گفتم شما که اصلا خونه نیستید و وقتی هم با همسرت به کلیسا میای، حتی با او سر یک کلاس نمیشینی. او گفت من از زنم نفرت دارم. وقتی از زنتون متنفر هستید، چیکار باید بکنید؟ وقتی از زنتون نفرت دارید، آیا دلتون میخواد به خونه برید؟ خب البته وقتی کسی از همسرش متنفر باشه، دلش نمیخواد زیاد توی خونه بمونه دلایل زیادی هست که مردان به خونه نمیرن اما اینجا یک نصیحت عملی هست که میگه با اونها ساکن بشید یعنی با اونها وقت بذارید من شنیدم که همسران دکترها میگن تنها راهی که ما میتونیم همسرمون رو ببینیم اینه که روی برانکار دراز بکشیم و به طرف اتاق عمل بریم اونها برای دیدن همسرشون حتی به فکر افتادن که این کار رو هم بکنن این برای شوهران بسیار مهم هست اگر اونها قرار هست زنانشون و خانوادهشون رو شبانی کنن همونطور که مسیح کلیسا رو شبانی میکنه باید با اونها بمونند و براشون وقت بذارن باید اونها رو در اولویت قرار بدن و براشون وقت بذارن پس این مشاوره ازدواج بسیار خوبی هست وقتی که پتروس میگه با اونها بمونید لطفا فکر نکنید که مشاوره ازدواج پولس امروزه کار نمیکنه مشاوره های ازدواج کتاب مقدس محدود به زمان نیست. من این متن باب سه اول پتروس رو با زنان زیادی در میون گذاشتم و شنیدم که اونها میگفتند، او پتروس وقتی این نامه رو می نوشت شوهر منو نمیشنا. رو راست بگم من ایمان دارم که روح القدس شوهر شما رو خیلی بهتر از شما میشناسه. وقتی روح القدس به شما میگه چیکار کنید، باید بکنید. از او اطاعت کنید. اینو امتحان کنید. فکر می کنم شوهر شما از این خوشش خواهد اومد. وقتی روح القدس به مردان میگه که برای زنان و فرزندانشون چیکار باید بکنن باور کنید خدا اون زنان و فرزندان رو خیلی بهتر از مردان میشناسه اگر ایمان دارید که روح القدس توسط مردان الهام گرفته کتاب مقدس رو نوشته وقتی درد کردید که روح القدس به شما میگه چیکار بکنید بعد از اون از او اطاعت کنید و این آیات رو در زندگیتون به کار بگیرید میخوام براتون مثالی بزنم زنی شبانی رو با همسرش به منزلشون دعوت کرد اما به شوهرش نگفت که اونها رو دعوت کرده. او میخواست که شبان با شوهر او صحبت کنه که شوهر خوبی بشه. وقتی شبان و همسرش وارد شدند و زن اونها رو به داخل آپارتمان کوچکشون دعوت کرد، شوهرش در حال کشیدن سیگار برگ و تماشای یک فیلم وسترن از تلویزیون بود. او خیلی عصبانی بود چون که زنش به زور واعظ رو به خونه آورده بود. وقتی زنشونها رو معرفی میکرد، صورت شوهر از خشم سرخ شده بود. او حتی از جاش بلند نشد و دست کن نداد و روی خودش نیاورد که اونها اونجا هستن. و همینطور مشغول پک زدن به سیگار و تماشای تلویزیون بود. بعد از چند دقیقه شبان و همسرش احساس کردند که تحقیر شدن. بنابراین از اون خونه رفتند. روز بعد وقتی زن به شبان تلفن زده بود پشت تلفن گریه می کرد. شبان به او گفت من فکر می کنم شوهر تو رو بیشتر از من دوست داره و تو شانس بهتری داری که با او رابطه برقرار کنی تا من شبان پیشنهاد کرد که با شوهرش صحبت کنه تا به اتفاق هم کتاب مقدس رو مطالعه کنن ضمن مطالعه کتاب مقدس شبان این آیات رو که ما ملاحظه کردیم با اونها در میون گذاشت توجه داشته باشید که پتروس نمیگه زن باید واعظی رو به خونش دعوت کنه بدون اینکه همسرش از اومدن اونها مطلع باشه پتروس گفته ای زنان از عیسی مسیح بخواهید تا به شما فیض عطا کنه که زنی باشید که شوهرتون حتی نمیتونه تصورش رو بکنه هیچ تضمینی وجود نداره اما اگر قرار هست شوهری به مسیح بیاد احتمالاً خدا برای این کار از زن او استفاده خواهد کرد اون زن نفس عمیقی کشید و گفت برای من دعا کنید و با کمک خدا من این کار رو انجام خواهم داد یکی دو سال بعد شبان به خانه اونها سر زد و شوهر بیرون از خونه توی حیات بود شوهر با شبان احوال پرسی کرد و او رو دعوت کرد که با هم به تماشای فوتبال برن خوب، اونها با هم به تماشای فوتبال رفتن و بعد از اون شوهر برای اولین بار به کلیسا رفت یکی دو هفته بعد اونها به تماشای بازی دیگری رفتن و شوهر باز هم به کلیسا رفت اوزا به همین روال ادامه داشت هر از گاهی بازی فوتبال و بعد از اون جلسه کلیسا شوهر در روز پدر به کلیسا رفت و شبان موعظه‌ای درباره روز پدر کرد او در موعظه گفت اگر میخواهید بدانید 20 سال بعد فرزندانتون چه شکلی خواهند بود جلوی آینه بیستید و خودتون رو خوب تماشا کنید اون مرد پدر دو پسر کوچک بود و واقعا اونها رو دوست داشت وقتی از اونها دعوت شد که به مسیح ایمان بیارن اون مرد پاسخ مثبت داد و به مسیح ایمان آورد شبان با خودش فکر کرد او حتما پسرهای کوچکش رو خیلی دوست داره و این چیزیه که بالاخره او رو به مسیح آورد. اما مرد بعد از جلسه کلیسا نزد شبان اومد و گفت: شبان، این به خاطر موعظه شما نبود. متاسفم که این رو میگم، اما به خاطر رفتار زنم بود که من ایمان آوردم. او در ادامه گفت: من در این آخر هفته با بعضی از دوستان ملاقات کردم و دیدم که دو نفر سعی دارن همون کاری رو بکنن که همسرم دو ساله براش تلاش میکنه با خودم فکر کردم چقدر عالی میشه اگه من و همسرم با همدیگه کاری که او انجام میده انجام بدیم این میتونه مثل بهشتی روی زمین باشه من به این دلیل ایمان آوردم اسم او مرد پل بود و ده سال بعد از اینکه ایمان آورد شبان یکی از بهترین کلیساها شد او شبان بزرگ و همسر و پدر خارق‌العاده‌ای شد تماماً به خاطر تلاشی بود که زنش سعی میکرد با راهکار پتروس همسرش رو جذب کنه این بهترین مثالی هست که میتونم بزنم که مشاوره ازدواج پتروس امروزه چطور کار میکنه من باید رو راست به شما بگم که این همیشه هم به این خوبی کار نمیکنه اما باور کنید اون کار میکنه من به کرات شده که دیدم اون کار کرده و میتونم اینو بگم که مشاوره ازدواج پتروس خیلی بهتر از مشاوره های دنیا کار میکنه از جمله اینکه سعی کنید همسرتون رو بکشید هول بدید و براش موازه کنید تا او رو به جایگاه خودش بیارید پس مشاوره ازدواج این شبان مجرب پتروس رسول رو در زندگی به کار بگیرید و من اطمینان دارم خواهید دید که مشاوره ازدواج او امروزه هم کار میکنه این مشاوره ازدواج داستانی رو به یاد من میاره که در کتاب داوران اتفاق افتاده همه شما که در تقیه برزی عهد قدیم با ما همراه بودید حتما داستان جد اون رو از کتاب داوران به خاطر میارید. وقتی جت اون شروع کرد به مغلوب کردن مدیانی ها او سی و دو مشاوره ازدواج بزرگ داشت پتروس به زنان گفته که جایگاه اونها کجا هست و به مردان هم گفته که جایگاهشان کجاست او به هر دوی اونها گفت به الگوی مسیح و کلیسا نگاه کنن او گفته زنان شما در این الگو کلیسا هستید در جایگاه خودتون بیستید و برای شوهرتون همون طور باشید که کلیسا برای مسیح هست. و به مردان گفت شما مسیح هستید برای زنتون آنگونه باشید که مسیح برای کلیسا هست با فیض خدا در جایگاه خودتون بیستید تمامی مشکلات ازدواج شما از بین خواهد رفت همونطور که وقتی اقلیت وفادار جد اون هر کدام در جای خودشان ایستادند مدیانی ها مغلوب شدن کاربرد عملی این برای همه شما که ازدواج کردید آشکار هست از الگوی کتاب مقدسی پیروی کنید چون که اون کار میکنه اما برای شما که ازدواج نکردید کتاب مقدس پشت سر هم به شما پیغام میده که در تمامی روابطتون از الگوی کتاب مقدس استفاده کنید و بذارید خدا شما رو کسی بکنه که باید بشید عزیزان کلام خدا بسیار کاربردیه و چیزهای زیادی درباره ازدواج برای گفتن داره اشتیاق اون اینه که ازدواج ما تصویری رو به دنیا ارائه بده که تصویری از محبت عیسی برای کلیساشه. حالا که داریم به پایان برنامه امروزمون میرسیم میخواییم برای شما و برای ازدواج شما دعا کنیم. مخصوصا برای اون عده از شما که به دنبال ازدواج مسیحی هستید. پدر آسمانی مهربان متشکرم که ازدواج رو تراهی کردی و به ما الگویی در کلام دادی که ازدواج ما باید چگونه باشه من برای تمامی شنوندگان دعا میکنم که تو زندگی اونها رو با محبت خودت پر کنی تا ازدواج اونها بازتابی از محبت تو باشه کمک کن که هر کدام فیض رحمت و محبت تو رو در ازدواجشون نشون بدن و برای کسایی که به دنبال همسری مسیحی و خودشناس هستند دعا می کنم تا کمک کنی که صبور باشن و اجازه بدن که روح تو اونها رو شکل بده تا بیشتر و بیشتر شبیه تو بشن. تا وقتی ازدواج می ازدواج اونها بازتابی از محبت تو برای لیسات باشه. در نام پسر تو عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین. عزیزان، ترتیبی بدید که در چلسه آینده هم در ادامه بررسی نامه اول پتروس با ما هم راه باشیم.